به حالت جنابت روزی چه حقیده اگر شب جنوب شد تا روز با جنابت ماند روزش درست هست مثل بعضی ها شب جنوب میشند قصد هم نمی بعد از طلوع افتا به خاطر ترک نمازی فاجش گناه کرده اما به خاطر اینکه روزش باطل نیست روزش درست هست